بر سر آنم که گرز دست براید دست به کاری زنم که غصه سر آید. خلوت دل نیست جای صحبت از داد دیوچ و بیرون روت فرشده در آید. صحبت و کام ظلمت شب یلداز نور ز خرشید جوی بوک براید بردر در بی مروت دنیا چند نشینی که خواهد کی به در آید ترک گدایی مکن که گنج بیاوی از نظر رحروی که در آید سالح و طالح متائخیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و شاخ گل بر آید قفلت حافظ در این سرا عجب نیست هر که به میخانه رفت بی می خبر آید